به نخست از متهم خواسته میشد که به گناهانش اعتراف کند. دستگاه تفتیش عقاید امیدوار بود که زندانی که از اتهامات خاصی خبر نداشت بیش از آنچه لازم است بگوید و بدین ترتیب اطلاعاتی را که مفتشان از آن بیخبر بودند فاش سازد. همچنین امید میرفت که زندانیان پای افراد دیگر به ویژه اعضای خانواده را که احتمال میرفت با دیدگاه های پدر، مادر یا بستگان دیگر هم باشند به میان کشند. مفتشان صبور بودند و به زندانیان نصیحت می که درون خود را بکاوند، حقیقت را اعتراف کنند و به بخشش دادگاه امید ببندند. گاهی افراد را به خاطر دشواری متقاید کردن مفتشان به اینکه آنها اطلاعات خود را پنهان نمی کنند، سالهای سال در شرایط دهشتناکی در زندان نگه می داشتند. به هر حال به ندرت پیش می آمد که زندانیان بتوانند بیگناهی خود را ثابت کنند. دهغانان بینوا و بی سواد غالباً در برابر مهارت و شکیبائی مفتشان، یا در نهایت تکنیک هایی که آنها برای اعتراف گیری به کار می بردند تا به مقاومت نداشتند. حتی زندانیان ثروتمند و تحصیل کرده که خیلی چیزها داشتند که از دست بدهند و در نتیجه بیش از همه برای اثبات بیگناهی خود انگیزه داشتند به ندرت می‌توانستند از چنگ دستگاه تفتیش عقاید بگریزند. راهبان دومنیکی حریفان سرسختی بودند که برای نقش خود به عنوان مدعی العموم یا بازجو و به عنوان غازی خوب تربیت شده بودند. دسته کوچک پیروان دومنیک که در اوایل قرن سیزدهم هم به همراه او به لانگدوک رفتند، طی قرنها به نیروی گسترده تفتیش عقایدی تبدیل شدند که از قدرت بسیار زیادی برخوردار بود. آنها معمولاً افرادی دارای تحصیلات دانشگاهی و مجهز به مهارتهای خاص جدلی برای اعترافگیری از مردم بودند. به گفته پاپ اینو کنتیوس چهار روم معموران تفتیش عقاید می بایست افرادی می بودند حداقل چهل ساله، خردمند، پخته و جا افتاده در معزگری نافذ، در عقیده متعصب و در اعمال اقتدار خود دارای اعتماد به نفس. راهبان همکار دستگاه تفتیش عقاید زندگی خود را وقف ریشکن ساختن بدعتگزاری می کردند. فرانسیسکن مشهور برنارد دلسیو هنگامی که اصحار داشت اگر پتروس قدیس و پولس قدیس به عنوان مزنون به محاکمه کشیده می شدند، نمی توانستند خود را به طور کامل تبرئه کنند، به طور غیر مستقیم مهارت خاص کسانی را که از زندانیان تفتیش عقاید بازجویی می میستود. پس در نهایت مأموران تفتیش عقاید هم مهارت و هم اختیار بکارگیری تقریبا هر وسیله ای را برای اعترافگیری دارا بودند برخی افراد از ترس اینکه سرانجام از سوی مأموران تفتیش پاپ مورد سوال واقع شوند در بدف زندانی شدن اعتراف میکردند افراد دیگری بودند که از اینکه چرا از آنها بازجویی می هیچ تصوری نداشتند و نمی پاسخهایی بدهند که مأموران تفتیش را قانع کنند. زندانیان دیگر میدانستند که چرا از آنها بازجویی می شود، اما میکوشیدند با سکوت خود و خانواده خود را حفظ کنند کاربرد شکنجه دین ترتیب دستگاه تفتیش عقاید که میکوشید این افراد بخت برگشته را به زور وادار به اعتراف کند از مجموعه ای از تکنیک های شکنجه استفاده میکرد که ممکن بود سرانجام حتی دلیرترین و نیرومندترین افراد را وادار به متهم ساختن خود کند کلیسا کاربرد شکنجه را برای اعتراف گیری کاملا تایید میکرد چون بدعتگزاران فریبکارانی تلقی می شدن که همکیشان مسیحی را به لعنت ابدی گرفتار میکردند. و تا به امروز تفتیش عقاید با این تکنیک ها همراه است. این موضوع را برنارد کلروی در قرن دوازدهم هم بیاد داشته و هشدار داده بود که بهتر است بدعتگزاران را شمشیر رئیس محکمهی که شمشیرش را بیهوده به کار نمی اندازد باز دارد. تا اینکه آنها گرفتار به عذاب کشاندن افراد بیشتری به راه اشتباه خود شوند. اعتراف به گناه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. تا هنگامی که معمور تفتیش برگزار کننده محاکمه نمیتوانست اعلام کند که مجرم اعتراف کرده است کلیسا نمیتوانست اقدام کند. از این رو تعجبی ندارد که نیکولاس ایمریچ نوشت در بازجوی از زندانی هیچ وقت نباید احتیاط و متانت بیش از اندازه بکار برد. بدعتگزاران در پوشاندن خطاهای خود زبردستند. آنها به قداست تظاهر می کنند و عشقهای دروغینی می ریزند که ممکن است دل سخت گیرترین قضات را هم به رحم آورد. معمور تفتیش باید خود را در برابر این حقوقه آماده سازد و همیشه فرض را بر این بگذارد که آنها دارند میکوشند او را فریب دهند. دستگاه تفتیش عقاید ابداگر شکنجه متهمان نبود. این عمل به امپراتوری روم و پیش از آن برمیگردد. در قرن‌های دوازدهم و سیزدهم که کاربرد قانون رومی در اروپا احیا شد، عمل اعترافگیری از طریق شکنجه در دادگاه های قانون مدنی از نو متداول گشت. تاریختان ادوارد پیترز میگوید گوید که رومیها در ابتدا فقط بردگان را شکنجه میکردند، اما اما بعدها شکنجه در موارد خیانت به کشور نسبت به شهروندان آزاد نیز امکان کاربرد یافت و از قرن سوم به بعد، به تدریج کاربرد آن در مورد جرائم متنوعتر و طیف گسترده‌ای از افراد به صورت امری عادی درآمد. سرانجام همه حکومت‌ها در اروپای غربی در قرون وستا از شکنجه به عنوان بخشی از فرایند غذایی در مورد شهروندان استفاده کردند. دادگاه‌های تفتیش عقاید همان روش را دنبال می‌کردند. روش های خشن شکنجه ای که دومینیکن به نمایندگی از دستگاه تفتیش عقاید به کار می بسیار نظام یافته بود و تا مدت‌ها پس از آن که اکثر حکومت اروپای غربی ناگزیر شدند علنان تصدیق کنند که به چون این روش های وحشیانه و اغلب کشنده اعترافگیری متوسل می شوند به صورت نهادینه شده باقی ماند. در اوایل دوره تفتیش عقاید روحانیون به لحاظ شرعی نمیتوانستند خود دست به شکنجه بزنند از این رو این تکلیف شاق اغلب به دوش آشناها یا دیگر اعضای دون‌پایه جمع همراهان مسئول تفتیش عقاید میافتاد. اما سرانجام خود مسئولان تفتیش عقاید غالبا در سرپرستی اعمال شکنجه مشارکت میکردند. که تا حدی حد به این سبب بود که اسرار زندانهای پاپی حفظ شود حکم شرعی در من خونریزی. ریاکاری کلیسا هنگامی آشکار میشد که به شکنجه و خونریزی اقدام میکرد. مثلا کلیسا که نهادی روحانی بود، از این که سبب خونریزی شود، اکیدا من شده بود. از این رو برای وفادارماندن به نص صریح قانون شرع شکنجه هایی که از سوی دستگاه تفتیش عقاید در مورد زندانیان اعمال میشد نمی بایست سبب خونریزی یا جراحت دائمی شود با وجود این بازجویی های دستگاه تفتیش عقاید اغلب باعث جراحت و آسیب دیدگی زندانیان و در موارد بسیاری سبب مرگ آنها می شود. در سال 1256، پاپ الکساندر چهار این مانع مشکل ساز را برداشت و به مأموران تفتیش عقاید حق داد که خود و آشناهایشان را از قید تعصب بیش از حد در امر اعترافگیری آزاد کنند. و اگر زندانی از شکنجه معمور تفتیش عقاید جان به در و به مجازات مرگ محکوم می شد، او را برای اعدام به مقامات کشوری تحویل می‌دادند. بدین ترتیب دستهای کلیسا و دادگاه‌های آن از خونریزی رسمی همچنان معاف باقی می‌ماند. قانون شهر تصریح می‌داشت که زندانی را تنها یک بار می‌توان شکنجه کرد. اما اسناد دستگاه تفتیش عقاید نشان می‌دهد که اداره مقدس راهی پیدا کرد که این مانع را نیز دور بزند. اگر یک جلسه شکنجه بدون اعتراف پایان می‌یافت، مأمور تفتیش عقاید در اسنادش مینوشت که شکنجه به حال تعلیق درآمد و نه اینکه به پایان رسید. آن وقت میشد شکنجه را روز بعد یا هفته بعد از سر گرفت بدون اینکه به معنای دقیق کلمه به قواعد دادگاه های تفتیش عقاید خدشه‌ای وارد شده باشد. خود مأمور تفتیش عقاید معمولاً به اعمال شکنجه نمی پرداخت. اما لازم بود که به هنگام اعمال آن حضور داشته باشد. معمولا دو مأمور تفتیش عقاید در جلسات شکنجه حضور میافتند و از زندانی بازجویی میکردند. خود مأموران تفتیش عقاید یا کاتبان آنها هم سؤالها و هم اظهارات زندانی را یاد داشت میکردند. حوییت مجری شکنجه از زندانی پنهان نگاه داشته میشد. آشنا یا هر از گاهی خود مأمور تفتیش عقاید که این وظیفه را عهدهدار دار بود، جامعه سیاه برتن می کرد و ردایی می پوشید که صورتش را پنهان می کرد. تنها چشم و دهانش از میان صوراخهای ردا پیدا بود. اشکال شکنجه دستگاه تفتیش عقاید شش شکل امده شکنجه را برای اعترافگیری بکار می برد. در شکنجه با آب، مقداری آب به زور به زندانی خوراند میشد، چه با یک وسیله مانند که در گلو وارد میشد یا با روش کنتری، چپاندن یک تکه پارچه در گلوی زندانی و خیز کردن آن یا بستن راه بینی زندانی و ریختن تدریجی آب در گلوی او زندانیانی که در معرض این شکل شکنجه قرار می‌گرفتند به خاطر حضور آب در گلو نمی‌توانستند نفس بکشند و پیوسته احساس می‌کردند که دارند خفه می شود. شکنجه با آب که مکرراً سبب پارگی رگ‌های خونی در گلوی قربانی می‌شد، آنقدر تکرار می‌شد تا زندانی یا بمیرد یا اعتراف کند. در جاهایی این شکل شکنجه حتی از این هم عذاباورتر می شد. زندانی را به یک چوب بسته دارای انهناع محکم می به گونه ای که سرش کمی پایینتر از سطح پایش قرار گیرد. با یک لوله آهنی دهانش را باز نگه می داشتن، سراخهای بینیش را می و یک تکه پارچه بلند را در دهانش می چپاندن. زندانی همیشه در آستانه خفگی بود، در دومین روش شکنجه، شکنجه با آتش به پاهای زندانی روغن می‌مالیدند. سپس یک منبع آتش را به تدریج به پاهایش نزدیک و نزدیکتر می‌کردند. سرانجام اگر زندانی اعتراف نمی‌کرد، پاهایش کباب می‌شد. حتی اگر متهم را سرانجام آزاد می‌کردند، دیگر به زحمت می‌توانست راه برود. پیر مارسولیه در تاریخ تفتیش عقاید خود چنین روشی را شرح می‌دهد آتش مهیبی برپا می‌شود پاهای زندانی را که در قُل و زنجیر است به آتش نزدیک می‌کنند در حالی که به آنها پیه خوک یا دنبه یا هر ماده گزنده و یا سوختنی دیگری مالیدهاند. به این ترتیب او را به طرز وحشتناکی می‌سوزانند به دفعات حائلی بین پاهای او و منبع آتش قرار می‌گیرد این لحظه فراغت به مأمور تفتیش امکان می‌دهد بازجویی خود را از سر گیرد. روش سوم مستلزم استفاده از تسمه و غرغره بود. بدون در نظر گرفتن اینکه متهم زن بود یا مرد، تمام لباسهای روی او را در درمی‌آوردند. سپس پاهای زندانی را محکم به هم می‌بستند. دست‌هایش را نیز از پشت می‌بستند. آن وقت مچهای دست زندانی را با تسمه به یک قرقره که چند متر بالای سرش قرار داشت متصل می کردند. زندانی را در این وضعیت اسفبار بالا می تا پاهایش از کف اتاق شکنجه جدا شود. در مواردی برای افسایش درد و رنج او وزنهایی به بدن زندانی متصل می ساختن. گاهی که زندانی از اعتراف خودداری می کرد، او را در همین وضع تازیانه می زدند. اغلب اوقات، زندانی را از بالای اتاق شکنجه ناگهان رها می کردند که به شدت به زمین کوبیده می و بر اثر جابجایی جایی مفصلها درد جانکاهی بر او آرز می گشت. اتاقهای شکنجه دستگاه تفتیش عقاید غالبا دارای چرخ بود. زندانی بیچاره را به چرخ می و شلاق می زدند. و گاهی با ابزارهای سخت و نکتیس بدنش را آماج قرار میدادند که درد و رنج وصف ناپذیری ایجاد میکرد. ماموران تفتیش عقاید غالبا برای اعترافگیری به چهار میخ متوصل میشدند. دستها و پاهای زندانی را به هایی در دو سوی یک تخت چوب پهن یا چهار میخ میبستند. اگر زندانی خود یا دیگران را به گناهان ناشناخته متهم نمیکرد شنج گان را می کشیدن. اگر این کشیدن مدتی ادامه پیدا میکرد بدن زندانی آنقدر کش می آمد تا مفصلهایش پاره شود. کسی که از این شکنج جان به در میبرد اگر برای همیشه زمینگیر نمیشد تا آخر عمر از درد رنج میبرد. ویلیام لیتگو، مردی انگلیسی که اسپانیایی‌ها او را دستگیر کردند و در سال 1620 در مالاگا در دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا به چهارمیخ میخ کشیدند و شکنجه کردند توانست به طریقی زنده بماند و تجربیات هولانگیزه خود را ثبت کند. دشقیم مرا کاملا اوریان کرد و به سوی چهارمیخ برد و روی آن سوار کرد. کمی بعد مرا با دو تناب کوچک که از زیر بازوهایم رد میشد و از دو حلقه آهنی که روی دیوار بالای سرم نصب شده بود عبور کرد از کتفهای اوریانم آویزان کردند. وقتی مأمور شکنجه مرا تا ارتفاع مورد نظر بالا کشید، پایین رفت، پاهایم را از دو طرف چهار میخ سزلی پایین کشید و به دور هر یک از مچهای پاهایم تنابی بست. بعد از چهار میخ بالا رفت و تنابها را به سمت بالا کشید و با تمام نیرو زانوهایم را به جلو خم کرد. به طوری که های پشت زانوهایم پاره و سر زانوهایم خرد شد. تنابها را محکم بست و مرا برای یک ساعت تمام همین طور چلاق آویزان نگه داشت. روش های دیگر اعترافگیری شامل برودکین می شد. در این روش پاهای زندانی را بین دو قطعه چوب که برودکین نامیده می شود، تحت فشار قرار میدادند. بعد شکننجگر گویهای چوبی یا فلزی را بین پای زندانی و بروتکین ها فرو میکرد. اگر زندانی در اعتراف به همه آنچه معموران تفتیش عقاید میخواستند بشنوند درنگ میکرد ممکن بود تمام استخوان پایش خورد شود. شش روشی که شرحش رفت اصلی ترین شکنجه هایی بودند که دستگاه تفتیش عقاید اعمال می کرد. اما گزارش های مستندی از کاربرد بسیاری روشها و ابزارهای دیگر از جمله، اشکلک، چکمه آهنی، توق و کمربند ساخته شده از میخهای وارونه و نشاندن زندانیان روی چهار پایه های فلزی داغ وجود دارد. متاسفانه تحمل شکنجه به ندرت به مصیبت مزنونان پایان میداد. دستگاه تفتیش عقاید بر این نظر بود که اعتراف گرفته شده از طریق کاربرد شکنجه اساساً بیارزش است. از این رو کسی را که در زیر شکنجه اعتراف کرده بود نزد مسئول تفتیش عقاید می‌بردند تا به آنچه در زیر فشار و شکنجه اعتراف کرده بود از نو از آن کند. برخی از زندانیان اعترافات خود را پس می گرفتند. در چنین مواردی شکنجه تکرار می شود. زیاد نبودند زندانیانی که بخواهند این فرایند را از نو تجربه کنند. دستگاه تفتیش عقاید می کوشید از هر گونه اشارهای به کاربرد شکنجه برای اعترافگیری در اسناد رسمی خود جلوگیری کند. این از آن جهت بود که همیشه در اعتبار اعترافات گرفته شده در زیر فشار و شکنجه تردید بود. واضح است که دستگاه تفتیش عقاید میخواست هر گونه تردیدی را در مورد موجه بودن حکم شرعی مجازاتهای اعمال شده که از اعترافات ثبت شده ناشی میشد برطرف سازد، اما به یقین این مجازاتها ها و شکنجه هایی که معمولا پیش از آنها اعمال میشد از جمله هولناکترین ترین جنبه های تفتیش عقاید است